رخداد، نادرستی نظریهای نژادی هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی نام خدا. باز سلام آمد و خدمت شما گنامی همراهان صدای امید از سایت اینترنتی www.sedayeomid.com در آغاز قسمت 28 این برنامه به همراه جناب آقای ایران مهرگرامی در خدمت شما هستیم. در سه قسمت گذشته ما بازم شروع به طرح بحث در مورد مقدمه‌ای برای شروع مهاجرت ها از شرق آفریقا به شهر قاهره آفریقا هستیم. هنوز انجام این مهاجرت‌ها و شیوه‌ی مهاجرت‌ها و و دلایلی مهاجرت‌ها را آغاز نکردیم. لذا اون مقدمه که من هنوز تو سه تا برنامه گذشته هستش باز هم ادامه میدم در پایان قسمت 27 م بنده بر اساسه خب ای کاش این برنامه حالت تصویری داشته به بنده نشون میدادم که مدعی که در پایان قسمت 27م عکدم که تقریبا اجداد حدود 90 درصد از مردم امروز جهان روزگاری از ایران و مناطق همسایه ایران یعنی کلاس ولات ایران آسیای گذشته ولات غربي گذشتن رو نشون میدادم که در واقع در اینجا سرزمین به سر بردن هزاران سال زندگی کردن اجداد اونها و مسیر عبور بسیاری از ساکن آسیا و اروپا و آمریکا از ایران بوده و به خوبی این نقشه شو من می آوردم برای دوستان و از طریق حالا لپتاپ و یا از به حضورتون که نقشه هایی که هستش نشون میدم ولی خب برنامه حالت فقط صوتی هستش و سمعی هستش بسری نیستش ولی دوستانی که بزرگوارانی که انتقاد در واقع نصد به این برنامه دارن می با ایمیل برنامه در ارتباط باشند. و میتونن حتی تو خود این برنامه حضور داشته باشند و انتقادات خودشون رو تو خود همین برنامه مطرح کنند و ما در حد توانمون پاسخ میدیم و به قول آقای اونالان نحنا عبنه و دلیل و اگر دلیل محکم تری دارن ما دلشون رو میپذیریم چون دلیل وجود نداره که ما اگر یک ادله علمی رو بپز ببینیم نپذیریم چون ما از طریق مسائل علمی این چیزا رو میگیم نه که مثلا بخوایم روی یک تعصب قومی یا تعصب نژادی یا این چیزایی که اساساً به هیچ اعتقادی هم نداری مین مطرح میکنی لزوما اتفاقا برخی ها اتفاقاً جورج برند هستش که میگه که این نقشه رو در واقع به وجود آورده میگه که رواس که اتفاقا این منطقه برای بشریت منطقه مقدس تلقی بشه نه مناطق دیگر چون بسیار از ابنای بشر از همین منطقه از همین فلات گذشتن و 90 درصد اجداد اونها سافسات هم همون بهشت عدنی که تو بلد. تورات هم آمده همین جاست دیگه همین آسیه غربی و مرکزیت ایران فیل. دقیقاً و آه... کتاب مقدس عهد عتیق هم تو که آقایان مه و نسل انسان امروزی که نسل انسان هوموساپین هست پس از خروج از آفریقا با نژادهای قبلی مواجه میشه و شاید در انقراض اونها نیز نقش داشته. این هم یه نظریه که مطرح هستش و هنوز هم در مقابل این نظریه نظریه که بتونه این رو نقض بکنه به صورت علمی تا حالا مطرح نشده. از جمله انسان هو که با انسان های ناندرتال که در مورد اونها اطلاعات بیشتری هست، نیز برخورد داشته. از نژاد ناندرتال ما اطلاعات بیشتری داریم. یعنی از انسان های قبل از انسان های ما زندگی میکردند، ما بیشتر اطلاعات در مورد انسان ناندرتال داریم. از نژاد از چون که چونکه اجساد نسبتا سالمی از اونها در میان یخچال های طبیعی کوه های اروپا یافت شده، از این انسان های ناندرتال به خاطر همین خیلی متلاشی نشده. اثراتشون مثل سنگواره ها و اونایی که تو یخچال های طبیعی اروپا برخیاشون به صورتی که بت نه که مثلا کامل چیز باشه مثلا مونبیایی باشه اینا نه یه سری بقایایی که از اونها باقی مونده به پژوهشگران اجازه داده که بیشتر در موردشون اطلاعات کسب بکنن و پژوهش علمی انجام بدن و آزمایش انجام بدن روی باقی مانده اجسادشون لذ اطلاعات در مورد ناندرتال ها بیشتر از اجداد دیگر انسان ها هستش یا گونه ها و موجودات انسانگونه دیگه ما در واپ هشکران در اختیار دارن آثار ب... و همچنین آثار بسیاری هم عضونات و نتیجه کاوش تو قارهای های اسپانیا ها و فرانسه هم به دست اومده اینجور انسان ها از انسان های موجود بلند قد تر بوده و پوست به رنگ روشن داشتن اندازه مغزونه ها نیز بزرگتر بوده اندازش لیکن برخی موتالا نشون میده که ممکن بخش های مربوط به گویش در گو در حد انسان هوموساپیان رشد نکرده بوده و از این بابت در امر گفتار دچار محدودیت شدن ولی اما از این انسان ها آثار نقاشی های بسیار زیبا در قارهایی از مناطقی تو اروپا خصوصا اسپانیا و فرانسه به جا مونده قدمت. بله قدمت بله یه بعضی حتی هشتاد هزار سال پیش هم میگن یه سری در واقع نقاشی هست 60 هزار سال پیشم میگن 20 هزار سال پیشم میگم یه نظریه هستش که اینا منقرض نشدن اه. حل شدن با ما اونایی که معتقدن که نسل منقرض شده در واقع این مطرح میکنن و این تقریبا هم ثابت شده است اتفاقا چون ببینید ما انسان هوموساپین که تونستیم تمدن بسازیم تونستیم شهر بسازیم کل کره زمین رو تقریبا حتی با، بگم با، یه چیزی حدود نزدیک 5.6 درصد حتی قسمت خاکی کره زمین هم کامل کشف نشده نماینده اینو حتما بدونن با اینکه ما کلا کره زمین و ادعای تصرف حتی مریخ و کره ماه و دیگر هم الان مدعاهو داریم و می‌خوایم تصرف کنیم هنوز تو همین کره زمین 60 درصد حالا سه چهارمی که پهنه آبی است همین پهنه خاکی 60 درصدش هنوز به طور کامل بشر در اون به طور کامل نتونسته راه پیدا بکنه و بتونه کامل بشناسه لذا معتقد اونایی که معتقدن که نسل ناندرتال به طور کامل از بین رفته معتقدن که این نسل اوموساپین هستش که اومده کل کره زمین رو به تسلط خودش درآورده و حالا قهرن یا از روی انتخاب یا نه انتخاب، یا انتخاب طبیعی یا انتخاب اقلانی خود هموساپی هم بوده که بقیه انسان نماهایی دیگر رو از بین برده تا اینکه بتونه تسلط داشته باشه بر کره زمین ولی در این حال حالا اینو بخواستم ارز بکنم که حالا اونا مغز بزرگتری داشتن چطور نتونستن تمدن بسازن ولی ما مغز نسبتا کوچکتری نسبت به اونها داریم تونستیم تمدد تمدد بسازم در همون نکته ای بود که عرض کردم که اونها ژنی اون که تکلم و گفتار رو و گفتگو رو در واقع ما داشتیم اونا نداشتن لذا یه سری آواهایی رو با رد و بدل می‌کردن ما مثلا توی بقیه ایوانات تا پستانداران هم داریم یه سری آواهایی به هم دیگه میگن و دیدیم همین آن رو و خب هممون با این آشنایی داریم ولی این نوع بشر چرا چون که بشر ما به اص... ب... خاطر گفتگو هست که فرهنگ رو میسازه به خاطر گفتگو هستش که علمش پیشرفت میکنه ساختن رو ادامه میده ولی اگر گفتگویی صورت نگیره یه انسان فکر کنه ل... تم... شما فکر کنه تمام انسان های کره مثلا لال باشن اصلا چ... چرا دانشگاه به وجود بیاد چرا اصلا چیزی جب... آموزش چی چی چیزی آموزش به وجود اصلا نمیاد لذا این انسان ها درست ها دیگه سری خلاقیت های دستی دارن حالا یه خلاقیت که مال 100 هزار سال پیش گفتم توی اندونزی هم کشف شده بود و این نقاش هایی که توی برخیز قارها تو فرانسه و اسپانیا هم از این ناندرتال ها باقی مونده شاید اون قسمت هنر نمایی و اون تخیل رو داشتن ولی اینکه بتونن اینو این, این انتقال بدن و تبدیل بکنن به علمی و یه فرهنگی و یک ساختنی این رو نداشتن و این قسمت توی مغزشون فعال نبوده میبینیم که به گفته پیکاسو نقاش مشهور در یک بازی از این قاره گفت که نقاشی در نقاشی ما چیز ج... پیکاسو در نقاشی یک وقت ما در نقاشی چیز جدیدی ابدا نکردیم ولی اگه خیلی هم هنرمند باشیم بتونیم مثل اونها در واقع نقاشی بکنیم و تخیلات خودمون رو بتونیم, بتونیم به صورت تصویر در از طریق تصویر با هم دیگه صحبت بکنیم مثلا تصویرسازی از همون اول حتی بلیسان ماوسابیان ها هم از اول هم تصویرسازی بوده که باعث به وجود اومده اتفاقا خط شده اصلا خط اولی شما میده بله تصویرسازی بله بله بله بوده تذکرم. حتی حتی بعدن آوایی شده بعد آ... بعدن آوایی شده لذا میام اجازه جلوتار برای مثال اینو عرض میکنم که خدمت شما میکنه عزیز این مساله جا بیفته مثلا همین قران قرآنی که اوایل اسلام توسط پیامبر نازل شد حالا بقیه اصحابی که قرآن رو می نوشتن خط به اون شکلی که مثلا ب... کسی بنویسه اون یکی مثلا الف... الف با داشته باشه بلد باشن به اینجوری نبود یه سری علامت های خاصی بود که فقط حافظای اون می این رو بخونن ولی بعد که در واقع ایرانیان وارد خلافت عباسی شدن جالبه که همین متن شما چیز خط کوفی رو نگاه کنید اصلا یه سری خب بیشتر چیزه حالا خط کوفی اون نسل دوم خط کوفی نسل اول که بیا کوفه بعدها بعد از فتح ایران تاسیس شد و خطی که تو حجاز بوده و در زمان عثمان هم از این این قرآن به این شکل حفظ شد بیشتر برای حفاز بوده حالا چیز نبوده نمی‌نی نه اعراب داشتن نقطه داشت اعراب‌گذاری حدود سال 100 هجری صورت می‌گیره جالبی که نقطه گذاری سال 220 هجری به وجود میاد که وقتی که ایرانی‌ها آشنا میشن و با وارد خلافت عباسی میشن و نقطه رو وارد خط عربی میکنه و خط عربی اساساً نقطه نداشت ما این ایرانی‌ها بودن که خط عربی رو میاد و حتی جالبی که حتی همین زبان عربی که ما باهاش صحبت میکنیم که مثلا این فلان عرب‌ها فلان هستن عرب‌ها یعنی کسی که زبان عربی داره اتفاقاً همین زبان رو ما, عرب... ما ایرانی به اون عرب‌ها دادیم شما مثلا نقش افرادی مثل ابن مقفع مثل عبدالحمید کاتب مثل علامی فیروزابادی در, در شکلی گیری ساختار زبان عربی قواعد زبان عربی همش ایرانی ها بودن که سرف و نحو نحوه عربی, عربی رو سیبوی بل ایرانی بنیانگذاری بله. کردن بله لذا اینجا دو من در مورد همین خط و در واقع چیزو میگم که چقدر همین تمدن اسلامی که از عرب برخواسته این خط و همچنین گویش صحبت کردن و نوع گفتگو چقدر تأثیر گذاشت وقتی وارد تمدن ایرانی شد چه تمدنی شد ما میبینیم بعد از اون اندیشمندان و بزرگی که فقط هم اکثرشون هم ایرانی بودن حالا این گریز زدم من چی میخوام بگم بگم که این گفتگو صحبت کردن و تبدیل کردن اون چیزی که توی ذهن هستش توی مغز هستش تبدیل کردن اون به یک علم و فرهنگ نیاز به گویش بوده چون این ناندرتال ها این گویش رو نداشتن نوع صحبت کردن رو نداشتن و فقط یک سر آواهایی به هم دیگه رد و بدل میکردن لذا اینها نتونستن مثل ما انسانهای مدرن به بومبست, بومبست, تکاملی, بومبست خوردن. تکاملی خوردن و نتونستن تمدن سازی ولی ما تونستیم تمدن سازی بکنیم و اتوان ریشه همین تمدن موقعی بود که همین انسان هموساپیه شروع به تکامل کرد و تونست ارتباط برقرار کنه و این ارتباط ارتباط باعث شد که اینا پخش بشن مثل بقیه جانداران مثلا پستانان رو توی یه نقطه نمونن تا یک نجات شکل بگیره بلکه اینها پخش شدن و با هم دیگه در ارتباط پیدا کردن و تکثیر شدن و راز تکثیرشون تو همون فرهنگ سازی هست تو همین گفتگو هست و به وجود بعدها که خط به وجود میاد بعدها که زبان به وجود میاد اینها رو شکل میده جناب آقای ایران بر گرامی این مقدمه ای که من درس کردم اینجا به پایان میرسه اگه شما نکات تکمیلی داریم بگین ما این بحث رو جمع بکنیم وارد شرق آفریقا بشیم و مهاجرت های اولییتون بگم که بله این یک مقدمه بود که باید گفته میشد منتها چون این بحث ها فرهنگی تعداد زیادی از دوستان جوانان میشنند من همین یک تعریزی ناچارم بکنم ولو که بیرون از بحث باشه بعد یک برخی چیزا به صورت نظریه است درست برخی مطالب به صورت اصل بیان میشه این رو من به عنوان یک اصل ارز میکنم یعنی یک اصل اثبات شده در برابر یک نظریه اثبات نشده رایج درسته خطی که امروز ما ایرانی ها داریم مینویسیم و همین خط جلوی ما هست همین خط کتابی ما این خط اون چیزی که افاه عمومی میگه اون چیزی که دانشگاه‌های ما من ناچارم بگم متاسفانه میگن اینی که این خط عربی بوده از حجاز و مکه و مدینه بره. بلند شده بعدا ما در دوره اسلامی با اش آشنا شدیم خط چون خیلی پیشرفته‌ای نداشتیم و خط پهلوی عقب مونده بوده اون خط رو گذاشتیم کنار این خط رو گرفتیم و کوفی و بعد کوفی و دیگه شد این من نمیدونم این شیطنت رو کی کرد و کی آس کرد و کی بر این آتشش دمید این من به اینش کاری ندارم بلد. اما اون چیزی که به طور مشخص امروز برخی پژوهشگران جوان پیش چشم گذاشتن جدولیه که به قول شما چون برنامه ما شنیداریه و دیداری نیست بلد. اینجا نمیتونیم نشون بدیم اما میتونن مراجعه کنن به مقاله خط فارسی بازمانده خط های کوهن ایرانی دکتر آزاده احسانی با همین مشخصات تو گوگل بنویسن میاد یه جدول خطیه که از این نمونش زیاد حالا من یه نمونش رو گفتم یک ستونش خط فارسیه باید. یه ستون حروف خط فارسی واکه های خط فارسی یه ستونش حروف عربیه حروف پهلوی پهلوی های پهلوی یه ستونش هم نبتیه بل. یعنی جلوی فکر کنم بچه چارم دبستانم بذاری ستون رو نگاه کنه شباهت حیرت انگیز و حروف فارسی و پهلوی رو تشخیص میده یعنی نمیشه اینقدر این حروفی که ما به کار میبریم شبیه حروف پهلوی باشه بعد این خط عربی باشه اینا دیگه من نمیدونم کی میخواد این جنبش رو نهزد آغاز بشه این علوم انسانی ما پالایش بشه سا علوم انسانی ما داریم ما تو ما در دور ما چیزی به نام علوم, علوم انسان انسانی داریم این کی می... هزار تا از این چیزا هست حالا این یکشه اینی که من ایرانی هم از عربا خوشم میاد نمیاد این یه بحث جداست اما اینی که واکهای حروف پهلوی مون میزنه با حروف واکهای حروف و حروف فارسی یه چیزیه که من حتی اگه ژاپنی هم باشم نگاه کنم آدم میفهمه اینو اون چیزی که عرب ها مینوشتن به خط نبتی بوده دقیقا خط اولیه از بله از اون چیزی که به عنوان خطای ایران باختری مونده که اون رو هم متاسفانه به قول دکتر همایون رکنودین همایون فرخ زنده یاد استاد رکنودین همایون فروخ. ایشون میگن که این داستان خط آرامی رو هم متاسفانه باز قربی ها درست کردن گذاشتن تو دامان ما. یعنی خطای ایران باختری رو گفتن اینا یعنی خطای آرام فرزند هام فرزند سام فرزند نوح اینا باز دوباره یهودیش کردن این اول خطای ایران باختری بوده خط نباتی یک شاخه از اون خطا بوده خیلی خط پیشرفته‌ای نبوده ما آخرین نمونه‌ای که از این در دست داریم سنگ نوشته خط امرئ القیس یکی از اون منصوبین شاهان ساسانی در هیره بوده. هیره در عراق فعلی بنی لخ, لخ. اینها متحدین ایران بودند در میان رودان که جبهه جلویی با روم بوده. آخرین نمونه که از خط نبتی ما می‌بینیم روی سنگ قبریشون نوشته شده. خیلی خط ابتدایی بوده. اینا کلان تو مکم هم 17 نفر بودند که خط تو اینا رو می‌دونسن نوشتن می اونم از قریش بودند. قریشی‌ها چون رابطه بسیار محکمی با ایرانیا داشتن اینا به ایران رفته آمد داشتن، به لبنان رفته آمد داشتن و با این خط آشنا بود. زمانی که اینها اومدن، اون قرآن رو به خط اولی رو هم که شما میفرمایید با یک تصاویر رمزالود و به خط نبتی منوشتن. که در زمان عثمان بعد دوره عمره دیگه، بله. یعنی بعد جنگ با ایران و دبیرای ایرانی در هیره اسیر شده بودند، در تیسفون اسیر شده بودن، بلی اینا کار م بله خط پهلوی به شکل خط فارسی امروز اعه او و نقطه او اینا نداشت بعد این خط رو دبیرای ایرانی بازنویسی کردن برای که بشه هم فارسی هم عربی رو باش نوشت نوش. بله دقیقا این بهش گفتن خط پیر آموز. اولی واقع عبدالحمید کاتب بوده که 154 رجی در اسم تو دربار اموی هم شروع کردیم حالا بعدا تو دست عباسی هم برد برد آوردن این دست از چیز اوموی شروع کرد این رو بعد یکی از کسانی دیگه هم که در این کار کوشش کرد خلیل احمد ایرانی بود بهرا کسانی بودن که کوشش کردن این خط به این خطی که تازه آفریده شد که دنبال خط پهلوی بود خط پیراموز خطی که بتونن به عربا هم بیاموزن اون 8 تا واکی هم که اضافه تو زبون اونا تلفظ میشد، بهش افسودن مثل زاد و مثل من. زالین و اینا مثل قاف و اینها رو بهش افسودن شد این خب اونا گوچه و پیوجه هم که نداشتن دیگه طبیعت این شد الفبای جدید پیراموز بعد در دوران عثمان اینا با این خط قرآن رو نگاشتن دقیقا. دیگه حالا با این خط پیشرفتی که در دست داشتن خب طبیعت بود که اوز میخوام این اج نه حالا ب... خوب چه چیزی چون وارد بحث اصلی میشن چون تماشاش به وقت برنامه ده. هم تمام شده بله قسمت 28 اتم اینجا به پایان میرسه تا آغاز قسمت 29 شنوندگان گرامی به خداوند متعال بسپارد خدایارا نگهدارت